کیش در لندن رونمایی کتاب یک ایرانشناس نام آمریکایی که در واقع مقیم کانادا هست این در لندن در مدرسه مطالعات آسیایی و آفریقایی لندن برگزار شد ریچارد فولز که تاکنون کتابهای بسیاری درباره ایران باستان و مزگسنا یا کیش زرتشتی و دین های باستان ایران نوشته اخیرا کتابی رو تحت عنوان تاریخ تاجیکان ایرانیان شرقی در انتشارات آیبی توریس لندن منتشر کرد که همین یکی دو روز پیش در دسترسی مشتریان غریب و از, از جمله به دست من هم رسیده و بینندگان بردامه میتونن ببینن که کتابی هست اسم History of the Tajiks, Iranians of the East یعنی تاریخ تاجیکان ایرانیان شرق آقای فولت برای خودش هدفی گذاشته که در بایی تاجیک ها یک کتاب تاریخی جامعه بنویسه یعنی گفته که در گذاشت همچه کتابی نبود و حالا باید اون این کار رو بکنه حتی بهتر از کتاب پیشکسوت آمریکای خودش ریچارد فرای که خودش رو ملقب به ایران دوست میدانست آقای فرای که 5 سال پیش درگذشت با این وصیت که در اصفهان به خاک سپرده بشه و اینطور نشد و حالا ریچارد فولز تلاش کرده خلاهای رو که پیشکسوتش به جا گذاشته بود پر بکنه همین دیروز از او پرسیدم که مهمان ما در واقع بود در این استودیو پرسیدم که آیا اون خلئی ای که خودش میگفت که حتی با نوشتن کتاب ریچارد فرای پر نشده بود این بار پر شده یا نه؟ فکر نکنم پر شده باشه ولی به اینقدر خالی که قبلا بود نیست یک قدم اولیه از اونجا میتونیم شروع کنیم ولی تا حالا این حرفی کسی نمیزد راجب به تاجیکان به عنوان ایرانیان شرق حداقل توی محیط علمی غربی، حتی توی ایران چیزی زیادی ننوشته شده راجب تاجیکان به سفرنامه البته ولی کار علمی تاریخ کلی نه نه و به خصوص امروز مردم عادت دارن از کلمه تاجیک استفاده کنند به معنی تاجیکان زمان شعروی ببرد دقیقا در باید کلمه ام. تاجیک صحبت خواهیم کرد ولی ام. پیش از رو میخواستم ببینم ام. که همونطور اشاره کردین خیلی ام. کم به تاجیکان به تاجیکستان توجه شده در محافل علمی غربی و حتی گفتی در ایران ام. دلیلش چی که شما توجه ظاهر کردید؟ چه چیزی باعث شد که رو آوردید به تاجیک و تاجیکستان؟ من از سی سال پیش که شروع کردم مشغول شدم به کار ایران شناسی آگاه بودم که سرزمین ایران ایران زمین خیلی از سرزمین جمهوری اسلامی بزرگتره حداقل دو برابر بزرگتره اگر سه برابر همون ازدراکی ریچارد فرای بهش میگه همین و ریچارد فرای که در دانشگاه همون دانشگاه که ما دانشجو شدیم دانشگاه هاروارد البته مدت طولانی اونجا استاد ایران شناسی بود البته اون همون سالی که من رسیدم که درسمو شروع کنم اون بازنشسته شد ولی هم رو می‌دیدیم و کارش رو خوب میشناختم شخصا رابطه داشتیم در و... اون باعث شد یا به شما الهام داد که الهام به... به من خیلی الهام داد من خیلی دیده تاریخی ریچارد فرای روبه جامعه ایرانی و تمدن ایرانی درک میکنم تایید میکنم در همین موسیقی دلیرم هست احتمالا که این کتاب تاریخ تاجیکان ایرانیان شرق رو شما به یاد خاطر ریچارد فرای تقدیم کردید حالا در واژه تاجی تاجیک بهش اشاری کردید که میدونیم در فرهنگ نامه های مختلف فارسی معانی مختلف داره حتی امروز هم تبیر دقیق و مشخصی از اون نیست ولی فکر میکنم در کتاب شما نسبتاً تعریفی که از تاجیک میدید، از مفهوم تاجیک بیشتر نزدیک هست به تعریفی که مثلاً واسیلی بارتولد داده <تصفح> که ایران شناسه بله، بله، بارتولد. محققان روسی و شوروی از چند نظر کار خیلی خوب و مفیدی کردند راجب تاریخ و دبیات و فرهنگ تاجیکان. یعنی فارس تاجیکان فارسی، فارسی تاجیکی... آره. که اونا خوب نشون دادن که یک ملت هستند برعکس سردین آینی بود به نظر من که بیشتر از همه تاجیکان رو جدا کرد از, از, از بقیه ایرانی ها و این با اتمال زیاد به خاطر شرایط سیاسی آن زمان که تویش زندگی میکرد مجبور بود اینجوری نشون نشون بده ولی از موند حالا برای اونایی که کتاب شما نخوندن بگم که این تعریفی که گفتیم از واجی تاجیک چه هست که در واقع گفته شده که تاجیک معمولا به معنای ایرانی در برای ترک کار رفته مثل مثلا در اشهار سعدی شیرازی که میگه شاید که به پادشاه بگویند ترکه تو بریخت خون تاجیک که در کتاب شما اومده یک بهتیگش هم هست که روی تاجیکانه ادبن مای تا داغ حوش آسمان بر چهره یه ترکان یقمایی کشد و از مولوی هم نمونه آورید کشد یک حمله یک حمله شب آمد تا... نمونه زیادی وجود, درسته، داره، علاها... وجود داره و به نظر من در همین برنامه شما اینجا در بی بی سی دوست عزیز ما آقای سفر عبدالله از آلماته که خودش مولای تاجیکستان مولای پنجکنته و فکر کنم برنامه شما اشاره کرد که در زمان گذشته یعنی قبل از زمان شوروی کلمه تاجیک هیچ وقت پیدا نشد مگر همراه با کلمه ترک یعنی ترک و ترکو تاجیک, تاجیک. دقیقاً اه... اگه میخواستم بگن ایرانی و ترک ترک و تاجیک بله همین و این معنی بسیار مفصلی داشت منظورم اینه که منظورش نه فقط زبان بود بلکه یک جور زندگی یک شخصیت یعنی اینقدر مردم اینجوری شویی که تفرق. بله که در آسیا مرکزی دو نوع آدم وجود داشت یکش تاجیک یکش ترک که از هم خیلی فرق میکردند از هر نظر از, از, از اخلاق و رفتار و تربیت و, و توانی از هر نظر و هر کدوم قدرتی داشت و نکته ضعیفی هم داشت و با هم کامل شد جامع یعنی هر جایی که تاجیکان ضعیف بودند ترک قوی بودند. هر جایی که ترک ضعیف بودند، تاجیک قوی بودن. دیگر. و کم میله و بنظر من این یک اگر آدم به تاریخ اجتماعی آسیای مرکزی هداقل در این هزار سال پیش نگاه کنه خیلی روشن میکنه اتفاقات که، که،, که که افتادن و و دینامیک که آدم میبینه در جامعه و در تاریخ خب این مفهومی تاجیک در گذشته در تاریخ بود امروز شما به چی نتیجه رسیدید که تاجیک فعلا چه معنی داره آه، تاجیک کلمه تاجیک در طول زمان بسیار تغییر معنی داده یعنی اول آه، آه، تاجیک منظورش بود عرب از زبان ساسانی ایرانیها به عربا گفتن تازیک که از،, از از قبیله عرب تا، تای. لا, لا. بعد که مسلمانان حمله کردند به آسیای مرکزی که بومی ها بیشتر سگدی بودند یعنی ایرونی بودند ولی سگدی زبانی سگدی که یک زبانی که, که نزدیک به فارسیه ولی یک زبانی کاملا متفاوته از خانوادهی زبانهای ایرانی و مردم سوگدی صحبت می و فرهنگ خودشون رو داشتن کنار فرهنگ ایرانی پارسهای ساسانی که بعضی وقت حتی رقیب بودند در واقع سوگدی ها بیشتر رابطه داشتند با ترکها تا با ایرانی های همسایه فارسی این نکته جالبیه. یعنی این دینامیک بین ترک و تاجیک برمیگرده به زمان پیش از اسلام سوقدیان باختریان بله، بله، بل همین همین او. پس وقتی مسلمانان حمله کردند به آسیا مرکزی این سوی ها که ایرانی بودند به اینا که از غرب اومده بودند گفتند تازیک چون تا اون زمان، عربا مسلمان شده بودند اوه. یعنی تازیک کلمه تازیک معنی مسلمان اضافه گرفت مسلمان شده. شده و چون به نظر ما تعداد ایرانی ایرانی مسلمان شده از تعداد خود عرب ها بیشتر بود زمانی که مسلمانها حمله کردند به آسیای مرکزی این هویت تازیک مسلمان که ها می میدونستند در مورد این, این ارتش که اشکال کرده سرزمینشون اونا حتی اول تشخیص میکردند یعنی ما متون سغدی داریم که میگند پارسیک و تازیک پارسیک و تازیک و اون زمان تازیک صد درصد عربه پارسی پارس ایرانی دنب. یعنی ایرانی و عرب ها اومدند و حمله کردند بعد از زمان مردم قاطی کردند این دوتا همه مسلمانند دیگه در نوعی جازیک برای ایرانی ها به کار رفته. بله رفته. چون که بیشتر از این مسلمان ها که حمله کردند به آسیا مرکزی ایرانی بودند اه. نه عرب تعداد عرب که اومدند کمه ارتش اون زمان بیشتر سربازی ایرانی بودند اه. پس این, این اه منی عرب از کار افتاد از کار افتاد و فقط منیش بود مسلمان و چون مسلمانان بیشترشون فارسی بود و فارسی زبان ای تمدون ای اسلام در آسیای مرکزی جا گرفت هر کسی که هر سگدی که تصمیم گرفت مسلمان بشه باید زبان فارسی، یا یاد بگیری نه زبانه عربی دیدیم که زبان فارسی یا پارسی نوین اونجا شکل گرفت این اشعار مثل مثلا مثل ابو حفص صغدی و م. رودکی سمرقندی که متفرد پنج رود تاجیکستان هست و اینها از اونجا میان و حتی به مولوی هم که شما اشاره می‌کنید میگید که متولد تاجیکستان بوده در منطقه وقشتان چون حضور عرب کم بود توی آسیا مرکزی توی فارس یا توی آذربایجان یا توی ماد حضور عرب زیاد بود و تونستند زبان خودشون بذارند به عنوان زبان رسمی ولی چون وجودشون کم بود توی آسیای مرکزی و فاصله زیاد بود از سرزمین های عرب ایرانی های مسلمان شده بودند که وسیله پخش این تمدن جدید اسلام کردند در آسیای مرکزی و به خاطر این بله این فارسی نو که برای تقریبا 150 سال غیب شده بود دوباره رشد کرده در آسیای مرکزی اول به خاطر پشتبانی سفاری ها و بعد سامانی ها. درسته. بسیار بسیار شیرینیه ولی میخواستم به نتیجهگیری شما در این کتاب برگردم اونجایی که شما به چشمنداز یا آیندی تاجیکان نگاه میکنید در پایین کتاب یه جایی هست که میگین که تاجیک ها میراست یکی از بزرگترین تمدن‌های جهان هستند اما تلاش های دولت برای ایجاد غرور ملی در درمین تاجیکان در تاجیکستان منظور هست نتیجه وارونه یا مکوس برعکس داده به این مورد هم کردین که با وجود زبان و فرهنگ مشترک تاجیکستان و افغانستان و ایران نتونستن هیچ موقع خیلی نزدیک بشن یعنی از این یعنی اشتراکات نتونستن استفاده بکنند به دلیل اونطور که شما میگین وجود حکومت‌های فاسد و مستبد یا خودکامه در منطقه و بعدش هم البته یک چیز امیدوار کننده در پایان شما دارید که میگید که با توجب به گذشتی درخشانی که تاجیکان داشتند میشه امیدوار بود که آینده درخشانی هم داشته باشند فقط باید یک کم منتظر بمونن منظورتون چه هست؟ متاسفانه من چند بار اقامت داشتم در تاجیکستان و بسیار بسیار دوست دارم خیلی دوست دارم تاجیکستان رو بسیار کشور زیبا و مردم دلپذیر فرهنگ بسیار غنی طبیعت خیلی خیلی تعجب آور و واقعا آرزو مندم که سرزمین تاجیکان رشد کند و موفق باشد ولی متاسفانه در این سالها که من فرصت داشتم تجربه کنم زندگی اونجا فهمیدم که شرایط بسیار سخته برای مردم و متاسفانه تا حالا ما زیاد نمیشه گفت که علامت مثبتی دیدیم که بتونه امید بده به آدم که به زودی فکر نکنم شرعت بتر بشه ولی یکی از دوستانمون در دوشنبه تازه یک بررسی از کتاب نوشته به زبان روسی و همین کاری که شما کرده اشاره کرد به جمله آخر کتاب آه. که شاید باید یک کمی صبر کنند و گفت که ما تاجیکان بلدیم صبر کنیم